عزیزان امروز متخصصین میگن یکی از بهترین راه های آموزش آموزش از طریق داستان هاست. امروز باز هم خواهیم دید که چطور عیسی از داستان ها و تمثیل ها برای بیان حقایق امیق روحانی استفاده کرد. به کلاس دیگری از دانشکده کتاب مقدس خوش اومدین. این کلاس بررسی کلی تمامی کتاب های کتاب مقدس هست. ما زمنه بررسی هامون به انجیل متا رسیدیم. چیزهای زیادی هست که امروز خدا میخواد به ما تعلیم بده. بیاید با گوش شنوا و قلبی باز به معلممون گوش کنیم. در آن وقت عیسی به سخنان خود ادامه داده گفت ای پدر، ای خداوند آسمان و زمین، تو را سپاس میگویم که این امور را از دانایان و خردمندان پنهان داشته و به ساده دلان آشکار ساخته ای. آری ای پدر خواست تو چنین بود پدر همه چیز را به من سپرده است و هیچ کس جز پدر پسر را نمیشناسد و هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد یوغ مرا به گردن گیرید و از من تعلیم یابید زیرا من بردبار و فروتن هستم و جانهای شما آرامی خواهد یافت. زیرا من آسان و بار من سبک است. یکی از نتایج اولین گردهمایی مسیحیان به کار گرفتن دوازده رسول بود. رسولان مأموریت یافتند که جوابهای کاربردی و راحلهای کاربردی عیسی ایسا باشند. حالا آماده ایم که انجیل متا، مرقس و لغا رو به طور خلاصه بررسی کنیم. زمن بررسی این اناجیل به وقای مهم از جمله صحبتهای عیسی، معجزات عیسی و تعالیم او تمرکز خواهیم کرد. ما این متنهای مهم رو در انجیل متا بررسی خواهیم کرد. اگرچه شاید این متنها در هر سه وجود داشته باشند، اما فقط یک بار اونها رو مرور خواهیم کرد. گاهی شاید نوشته های لغا یا مرقس رو ترجیح بدیم، اما هر متنی رو فقط یک بار بررسی خواهیم کرد. وقتی که بررسی متن‌های مهم مطا رو تموم کردیم بعد از اون متن‌های مهم لغا رو که در متا وجود ندارن بررسی خواهیم کرد در مقدمه به شما گفتم که تقریبا هر چیزی که در متا هست در لغا و مرقص هم وجود داره وقتی بررسی متا و لغا رو تموم کنیم میشه گفت حدود 99 درصد مطالب مرقس را هم تموم کردیم بنابراین من تفسیرم را از این بخش مهم در بررسی انجیل مرقس تکرار نخواهم کرد. در جلسات قبلی ده باب اول متا رو بررسی کردیم. در باب یازده متا ما بخش بسیار مهمی رو میبینیم. به نوع این بخش یک تناقض رو نشون میده. در این مد به نظر میرسه که آمدن کسانی که به حضور ایسای مسیح میان چیزی که در مشیت الهی مقرر شده. خدا اولین محرک نجات ما هست.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 و هیچ کس پدر را نمیشناسد به جز پسر و کسانی که پسر بخواهد پدر را به ایشان بشناساند. در تمامی این متن، اینطور به نظر میرسه که نجات کسانی که به حضور عیسی میان توسط خدا مقرر شده و به خدا بستگی داره. خدا عامل محرک اصلی و بزرگ هست. اگر او دنبال ما نگرده، ما هرگز دنبال او نمی گردیم. بعد در عواست این متن، لحنش رو عوض میکنه و یکی از دعوتهای بزرگ خودش رو عنوان میکنه که هر کی بخواد میتونه بیاد. همونطور که در پایان موزه سر کوه دیدیم، عیسی در دعوتهاش بسیار با عظمت بود. مبشرین پیشین مثل بیل برای دعوت کردن شیوه های کاملا کتاب مقدسی و سازگار با مسیحیت داشتند. عیسی چندین دعوت کرده. اینجا یکی از دعوتهای عیسی هست که من خیلی دوستش دارم. تقریبا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 ملاحظه کنید که این دعوت خطاب به چه کسانی هست. میگه نزد من بیایید تمامی زحمتکشان و گرانباران گاهی به عنوان شبان با کسانی کار میکنید کنید که می بینید مشکلات فراوانی دارند برخی از شبانها امروزه بیشتر وقتشون رو صرف مشاوره می کنن. روزی از خودم پرسیدم چرا کسانی که به کلیسا میان این همه مشکل دارند در این متن جواب بسیار خوبی برای سوال خودم پیدا کردم کسانی که به کلیسا میان با مشکلات زمینگیر شدن و در دستشون دعوتنامه ای از عیسی دارند که میگه نزد من بیایید. کسانی که زیر بار سنگین مشکلات خم شدید و با کارهای سخت خودتون رو خسته کردید و نمیتونید مشکلاتتون را حل کنید. من به شما آرامی خواهم داد. اگر مشکلات زیادی دارید، این دعوت عیسی مستقیما خطاب به شماست. اگر با مشکلات زمینگیر شدید، دعوتنامه مخصوصی از عیسی دارید. دعوت اینه ای تمامی زحمتکشان و گرانباران نزد من بیایید و من به شما آرامی خواهم داد و به این ترتیب به شما آرامی خواهم داد که شما نزد من بیایید و یوغ مرا بردارید و از من بیاموزید بعد خواهید فهمید که من ملایم هستم و قلبی مهربان دارم و خواهید فهمید که اگر یوغ مرا بردارید بارهای شما سبک خواهد شد و زندگی براتون آسان خواهد شد کلید درک این دعوت زیبا اینه که درک کنیم منظور عیسی از یوغ و برداشت کسانی که این رو میشنوند چی هست یادتونه وقتی به خوشابه ها نگاه میکردیم گفتم که ملایمت ضعف نیست ملایمت انضباط هست یا رام شدن وقتی که عصبی دهنه رو میپذیره و به سوارکار جازه سواری میده اون اسب ضعیف نیست فقط رام شده این معنی ملایمته وقتی پولس عیسی مسیح رو در راه دمشق ملاقات کرد عیسی او گفت چرا لگام رو نمیپذیری این برای تو سخته بعد شاول ترسوسی که بعدها به پولس معروف شد گفت خداوند از من میخوای چیکار کنم اینجا بود که شاول ترسوسی لگام رو پذیرفت و ملایم شد در این متن عیسی میگه زیرا من ملایم هستم حالا هیچکس هرگز به اندازه عیسی ملایم نبوده درخت قدیم به ما گفته شده که موسا ملایم ترین مردی بود که دنیا به خودش دیده بود عیسی کسی فراتر از انسان بود. عیسی مرد کاملی بود و به عنوان یک مرد کامل، او کاملا ملایم بود. وقتی عیسی گفت که ملایمه، منظورش این بود که من همیشه کاری رو انجام میدم که پدر رو خوشنود کنم. عیسی یوق پدر رو پذیرو. عیسی همواره اراده پدر رو به جا آورد. در صحبت‌های بالاخانه عیسی به ما میگه که هر سخنی که او میگه، پدر به او گفته که بگه. او همیشه اراده پدر رو به جا می آورد. وقتی گفت بیایید و از من یاد بگیرید من ملایم هستم و یوغ منو برگیرید منظورش دقیقا همین بود. یوغ منو بردارید و ببینید که یوغ من بارهای شما رو سبک میکنه و زندگیتون رو آسون میکنه. ما گاهی یوغ رو به عنوان بار میبینیم اما یوغ بار نیست. یوغ وسیله که این امکان رو فراهم میکنه تا بارها رو حمل کنیم. یک گاری رو تصور کنید که گاوی داره اونو میکشه. انواعی از این گاریا هنوزم در برخی از مناطق دنیا به کار می‌رند. این گاری طوری طراحی شده که یک گاونر بتونه بار سنگینی را حمل کنه. گاو این قدرت رو داره که تمام بار رو حرکت بده. اما نر چطور اون بار رو حمل خواهد کرد؟ آیا اون رو روی زمین خواهد کشید یا اون رو هل خواهد داد یا سعی خواهد کرد با سرشون رو به جلو ببره؟ چطور؟ با تمام قدرتی که گاو داره نمیتونه بدون یوغ اون بار رو حمل کنه وقتی یوغ رو بر روی گاو قرار بدید یوغ این امکان رو فراهم میکنه که تمامی نیروی گاو تحت کنترل در بیاد تا بتونه اون بار سنگین رو حمل کنه این چیزیه که عیسی میگه بیایید نزد من ای کسانی که زیر بار سنگین زمین گیر شدید من به شما یوغی رو نشون خواهم داد که این امکان رو فراهم میکنه بارهاتون رو حمل کنید زندگی از بارها تشکیل شده در این مَط نجات رو به عنوان راه حل تمامی بارهای زندگی نشون میده. او به ما نشون میده که بارهای زندگی میتونن سبک بشن و کلیدش یوق او هست. یوق او چی هست؟ تعالیم عیسی یوق او هست. یوق او مقررات و هایی هست که او به شاگردانش تعلیم میده. تمامی این چیزها یوق عیسی هستند. وقتی یوق او رو درک کنیم و اون رو برداریم یاد میگیریم که چطور بارهای زندگی رو همراه با عیسی حمل کنیم که در طرف دیگر یوق برای حمل بار به ما کمک میکنه. این متن زیبا به ما میگه که اولاً برای نجات نزد عیسی بیاییم از بارهای سنگین زندگی خلاص بشیم بعد این متن دعوتی هست برای پذیرش مقررات زندگی که عیسی اومد تا به ما نشون بده و ما رو به زندگی دعوت کنه در این حالی این متن به ما میگه که لازم برای خدمت در پادشاهی خدا به همراه عیسی زیر یوغ او بریم وقتی باب 13 رو در انجیل متی می خونید بسیار مهمی از خدمت تعالیم عیسا رو می بینید باب 13 متی باب های بزرگی است که در اناجیل هم نظیر تکرار شده و گاهی در هر سه انجیل اومده ها بود مهمی از خدمت تعلیم عیسی هستند عیسی کسی که بر مسائل ها تسلط زیادی داره کلمه یونانی برای مثل کلمه ی پارابلو است پاراب معنی در کنار و بلو به منیه پرتاب کردن برای تعلیم چیزی که میخواهید بیاموزید داستانی انتخاب میکنید و اون داستان رو در کنار حقیقتی که میخواهید تعلیم بدید طرح میکنید داستانی که برای تفهیم حقیقت مطرح میکنید به شاگردان شما کمک میکنه که اون رو بهتر بفهمند عیسی تعالیم زیادی به همراه مسائل داره دوره در خدمت او هست که تمامی تعالیمش با مسائل ها مطرح شده دلایل عملی خوبی برای اون وجود داره. عیسی از مردم می‌خواست که تمامی تعهدشون رو به او بسپارند. در امپراتوری روم فرمان داده شده بود که همه باید به قیصر متحد باشند. اگر کسی با شخص دیگری غیر از قیصر بیعت می‌کرد، محکوم به مرگ می‌شد. به رومیان فرمان داده شده بود که هر چند سال یک بار مقدار کمی بخور داخل آتش بیاندازند و بگن قیصر خداوند است. به این دلیلی که عیسی تمامی حقیقتی رو که میخواست تعلیم بده، به وسیله این داستان‌های کوچک با مثلها تعلیم میداد. تصور کنید که سربازان رومی با شمشیرهای برهن در اطراف معبد ایستاده بودند و میشنیدند که عیسی این داستان‌های کوتاه فکاهی رو میگه. اونها تصور میکردند که او یک دیوانه است و یا یک عالم یهودی دورگرد از ناصره است. عیسی مثلی درباره مردی میگه که گنجینه ای در زمینی پیدا میکنه و برای تصاحب اون گنج هر چیزی که داره میفروشه و اون زمین رو میخره چون او باید مطمئن بشه که اون گنجینه رو به دست میاره یا داستانی از مردی میگه که متخصص مروارید هست و در تمام مدت و عمرش دنبال مرواریدی بی‌نقص میگشته روزی او مرواریدی عالی پیدا میکنه و باز برای تصاحب اون تمام داراییش رو میفروشه تا بتونه اون مروارید رو بخره عیسی چه چیزی در این مسائل ها تعلیم میداد منظورش از گنج و مروارید چی بود او داشت تعلیم میداد که او شاهی هست که دنبال رعایایی می گرده که با شادی هر چیزی رو که دارند رها کنند تا بتونن بخشی از پادشاهی آسمان بشن. وقتی من پسر بچه بودم روزنامه پخش می کردم. هر روز صبح خیلی زود قبل از مدرسه روزنامه هام رو توضیح می کردم. وقتی به خونه می خسته با سرمازده و گرسنه بودم مادرم صبحانه ی داغ مفصلی آماده می کرد و منتظر من میشد. او کنارم مینشست و کتاب مقدسش رو باز میکرد و کلام رو برای من میخوند یادمه که به من چی میگفت او میگفت اگر عیسی مسیح برای تو چیزی هست پس عیسی مسیح باید همه چیز تو باشه تا زمانی که عیسی مسیح همه چیز تو نشه در واقع برای تو چیزی نمیشه نمیدونم چند بار این رو برای من تکرار کرده بود من مسیحی نمیشدم تا اینکه که هجده سالم شد من میدونستم که اگر مسیحی اگر قرار بود عیسی مسیح چیزی برای من باشه، او باید همه چیز من باشه. چون اگر همه چیز من نمیشد، در واقع برام هیچ چیزی نبود. این چیزیه که همین مسئله کوتاه میگه. پادشاهی خدا یا تجربه مسیحی خود عیسی مسیح میگه نجات مانند گنجینه ای هست که در دل زمین پنهان شده. تا زمانی که شخص مطمئن نشه میخواد تمام اون گنجینه رو به دست بیاره، تمام داراییش رو نمیفروشه که اون زمین رو بخره و گنجینه رو به دست بیاره نه به خاطر وظیفه بلکه به خاطر لذت بردن از اون. مسل مرواری تام همین چیز رو تعلیم میده. عیسی وقتی این مسائل ها رو تعلیم میداد بیعت کامل مردم رو میخواست. او به این دلیل تعالیم شباما ما به مسئله ها میگه چون میدونه روح القدس معنی این مسئله ها رو برای شاگردان باز میکنه. اما افرادی مثل سربازان و رومی که اونجا ایستاده بودند نمیتونستند بفهمند که او از چی حرف میزنه. تون میخوام به این فکر کنید آیا ایسای مسیح برای شما چیزی هست من معتقدم که این مسائل ها چیزی رو تعلیم میدن که من از یک مادر خداشناس یاد گرفتم اگر عیسی مسیح برای شما چیزی هست پس باید همه چیز شما باشه تا زمانی که ایسای مسیح همه چیز شما نباشه در واقع برای شما چیزی نخواهد بود من جدا باور دارم که شاگرد ایسای مسیح شدن هیچ مفهومی برای شما نخواهد داشت تا زمانی که عیسی مسیح همه چیز شما بشه این چیزیه که باید بهش فکر کنیم وقتی باب سیزده متا رو میخونید بزرگترین باب مسائل رو در کتاب مقدس میبینید اولین مسل در متا سیزده مسل برزگر هست بسیاری از شما با اون آشنا هستید در این مسل عیسی میگه کشاورزی میره و بذرش رو میپاشه زمانی که کشاورز با کیسه‌ای پر از بذر میاد و بذرها رو میپاشه عیسی گفته بعضی از دانه ها در وسط راه افتادن و پرندگان آمده آنها را خوردن. بعضی از دانه ها روی سنگ لاخ افتادند و چون زمین عمقی نداشت زود سبز شدن اما وقتی خورشید بر آنها تابید همه سوختن و چون ریشه نداشتند خشک شدن. بعضی از دانه ها به داخل خارها افتادند و خارها رشد کرد آنها را خفه کردند بعضی از دانه ها در خاک خوب افتادند و از هر دانه سی شست و یا صد دانه به دست آمد وقتی عیسی این مثل را تعلیم داد شاگردانش گفتند مفهوم این چی بود عیسیٰ مثل رو برای اونها شرح داد و گفت: "بذر کلام خداست. ایسا به طور خلاصه گفت: هر بار که کلام خدا موعظه میشه و یا تعلیم داده میشه، مردم به چهار روش مختلف واکنش نشون میدن. بزرهایی که به سطح زمین سخت میافتند و هرگز جوانه نمیزنند، نماد کسانی هستند که کلام خدا رو میشنوند و اون رو درک نمیکنند و درک اونها از کلام جوانه نمیزنه و هیچ ثمری از اون بذر به دست نمیاد. بذرهایی که در زمین سنگلاخ میافتند، نماد کسانی هستند که کلام رو درک می کنند، اما از اون اطاعت نمی کنند. ما اراده یازاد داریم، ما مخلوقاتی با حق انتخاب هستیم. عیسی کسانی رو توصیف میکنه کنه که اطاعت نمی کنند. مثل کسانی که دلشون رو سخت می کنن. گاهی مردم عزمشون رو جذب می تا کلام خدا نتونه در دلهای اونها جوونه بزنه. این مسئله زیبا نا اطاعتی رو توصیف می کنه. جایی که نا اطاعتی هست، هم وجود نداره. عیسی بعد بعضی رو تفسیر میکنه که هیچ مشکلی در خاکش وجود نداره اما اونجا خارها یا کرکاسهایی وجود داره که وقتی شروع به رشد میکنه مانع رشد بذر میشه عیسی توضیح میده اینها کسانی هستند که درک و ارادهشون مشکلی نداره و وقتی کلام خدا رو میشنون در دلشون جوانه میزنه اونها کلام خدا رو درک میکنن و واقعا میخوان که از اون اطاعت هم بکنن اما میفهمند که شیطان زیاد از این وضع راضی نیست متوجه میشن که شریر در طرف اونها نیست وقتی اونا میگن من واقعا میخوام از کلام خدا اطاعت کنم با انواع مخالفت ها رو برو میشن نگرانی های این دنیا فریب های ثروت لذت های دنیا اونها رو شکست میده و اونها هم نهایتا نمیتونن سمری بیارن بعد عیسی 4 این گروه رو توصیف میکنه جایی که بذر ها ثمر میارن این زمین نماد مردمی هستند که کلام خدا رو شنیدند و اون رو به جا آوردن و هیچ چیزی در زندگیهاشون نیست هوششون و یا ارادشون اونها رو شکست نمیده هیچ چیزی خارج از زندگیهاشون نیست که مثل خارها اونها رو شکست بده اونها از کلام خدا اطاعت می و سمر می‌آورند. گاهی سی، گاهی شست و گاهی صد برابر این توضیح عیسی از مسئله برزگر هست کار برده عملی مسئله برزگر چیه؟ وقتی اولین بار به این مسئله نگاه می‌کنید، بیشترین چیزی که دربارش اش فکر میکنید اینه که این مسئله برزگر نیست این مسئله بحث هاست چون که مسئله تماما در مورد کلام خدا هست مسئله به ما میگه که مردم وقتی کلام خدا رو میشنونن چطور به اون واکنش نشون میدن وقتی بر اون تعلیم تمرکز کنید متوجه میشید که شاید حتی بهترین عنوان برای این مسل خاک ها باشه چون این مسل در مورد چهار نوع خاک مختلف صحبت میکنه و بعد میتونید به این مثل عنوان چهار مرد روی نیمکت بدید. شما کدوم یک از اونها هستی؟ چون اون در مورد چهار نوع مختلف از مردم هست و واکنشی که اونها به کلام خدا نشون میدن. هر شبانی که کتاب مقدس رو تعلیم میده به شما خواهد گفت که هر بار که کلام خدا موعظه یا تعلیم داده میشه اون چهار مرد در صحنه حضور دارند. چهار مرد روی نیمکت نشستن. شما کدوم یک هستید؟ هر شبان میتونه بگه اونها امروز اینجا حضور دارند و من میتونم بگم اونها کی هستند. اون یکی رو میبینی که اون گوش خوابیده؟ زمین او غیر قابل نفوذه. این از دسته اول هست. بعد میتونه به سه مرد دیگه روی نیمکت اشاره کنه او میتونه بگه حالا این مرد کلام رو درک میکنه اما هرگز اهمیتی به اون نخواهد داد. بعد این یکی کسیه که واقعا کلام خدا رو درک میکنه و صمیمانه میخواد از اون اطاعت کنه. اما وقتی اوایل صبح دوشنبه از خونه بیرون بره شکست خواهد خورد اگر شیطان نتونه او رو ثروتمند کنه یا او رو با اسباب بازی ها مشغول کنه او رو نگران این خواهد کرد که ثروتمند نیست شیطان او رو با فریب کاری در مورد ثروت و نگرانی های این دنیا شکست خواهد داد شیطان او رو یا به این طرف خواهد کشید یا به اون طرف یا او رو ثروتمند میکنه یا سبب میشه که او نگران فقرش باشه به هر حال شیطان او رو شکست میده چون او دوست نداره انسان کلام خدا رو بشنوه و به اون عمل کنه و زندگیش بهبود پیدا کنه وقتی کلام خدا تعلیم داده میشه چند وقت یک بار شبانی میتونه به کسی اشاره کنه و بگه این مرد از گروه 4 هست وقتی کلام خدا رو میشنوه اون رو درک میکنه و با قدرت روح القدس از کلام خدا اطاعت میکنه و میوه میاره رو راست بگم افراد زیادی در گروه چهارم وجود ندارن اما همیشه عده ای و این چیزی که معلم کلام خدا بودن رو هیجان انگیز می‌کنه. به لحاظ کاربوردی فکر می کنم این مسل به ما میگه مراقب باشید که چگونه کلام خدا رو گوش میکنید. چالش این مسل این هست مراقب باشید که چطور گوش میکنید. هر بار که به کتاب مقدس نزدیک میشید یادتون باشه چهار راه برای واکنش نشون دادن به کتاب مقدس هست و فقط یکی از اونها مسمر ثمر هست. وقتی کلام خدا رو می‌شنوید چه واکنشی نشون اگر کلام خدا رو تعلیم میدید، چنان که میدونم بعضی هاتون تعلیم هم میدید، یادتون باشه وقتی در حال تعلیم کلام هستید، باید تعلیمتون اونقدر ساده باشه که در ادراک شاگردانتون نفوذ کنه، وگرنه ثمر به بار نخواهد آورد. اگر شاگردانتون کلام رو درک نکنن، ثمر نخواهند آورد. وقتی کلام رو تعلیم میدید، نه تنها باید اون اونقدر ساده بگید که درک کنند، بلکه همیشه از اونها نظرخواهی بکنید. باید کاربرد چیزی رو که تعلیم میدید به شاگردانتون نشون بدید. همیشه شاگردانتون رو تشویق کنید که از کلامی که تعلیم میدید اطاعت کنند و اون رو بپذیرند. همیشه از خودتون بپرسید هدف من از تعلیم این درس چیه؟ میخوام شاگردانم چه چیزی رو یاد بگیرن؟ میخوام ببینم شاگردانم در نتیجه این درس چیکار میکنن؟ شما باید همیشه در عین تعلیم چنین هدفی در دلتون باشه. براساس این اصل هیچ اتفاقی نخواهد افتاد تا زمانی که کلام خدا درک و پذیرفته بشه وقتی بدونید که اون چهار شخص در مقابل خارها زمانی پیروز میشن که کلام خدا رو درک کنن و مایل باشن از اون اطاعت کنن اون وقت میفهمید که خود شما چقدر به خدا متکی هستی هر معلمی باید این رو درک کنه من نمیتونم اما او میتونه و او با منه چون او با ما هست وقتی کلام خدا رو تعلیم میدیم میتونیم توقع داشته باشیم که نتیجه و ثمرش رو ببینیم گاهی سی، گاهی شست و گاهی 100 برابر. در باب ششم کتاب اعمال وقتی ها شروع به رشد می کنن، رسولان تصمیم بسیار مهمی می گیرند. رسولان منتظر سفره بودند. اونا بین هزاران نفر غذا تقسیم می کردن. رسولان تمام جماعت کلیسا را گرد آوردن و گفتند کسانی را از بین خودتون تعیین کنید تا کار تقسیم غذا رو به عهده بگیرند و ما خودمون رو تمام وقت وقف دعا و خدمت به کلام خدا خواهیم کرد. ببینید این کلید هست وقتی مسئله برزگر رو درک کنید ثمرات باید با دعا و خدمت به کلام خدا باشه چون شما نمیتونید در قلب و ذهن کسی نفوذ کنید فقط روح القدس میتونه این کارو بکنه بر اساس کتاب مقدس روح القدس کلام رو به مردم تعلیم میده ما نمیتونیم مردم رو مشتاق کنیم که وقتی تعالیم کلام خدا رو میشنوند از اون اطاعت کنن کتاب مقدس میگه زیرا خداست که از لطف خود هم اراده و هم قدرت هر کاری را در شما ایجاد می کند. خدا کسی رو علاقمند می کنه. شما این کار رو نمی کنید. نمی این کار رو بکنید. مهم نیست که چقدر معلم خوبی هستید. شما نمیتونید تونید این کار رو بکنید. وقتی فهمیدید مسئله چیه، اون وقت می دونید که چرا باید با دعا در خدمت کلام خدا بود. مسئله بعدی که عیسی تعلیم داد، بسیار شبیه به مسئله برزگر هست در این تعلیم عیسی میگه مردی بذر خوب در زمینش پاشید. اما به زودی فهمید که کرکاس هم به همراه گندم ها روش کردن. دهقانان پیش ارباب خود آمده گفتند ای آقا مگر بزری که تو در مزرعه خود کاشتی خوب نبود؟ پس این تلخه ها از کجا آمدند چیزی که عیسی به اونها تلخه یا کرکاس میگه ظاهری مثل گندم دارند اما گندم نیستند، ولی شبیه گندم هستند. این مسل به مسائل عمیقی اشاره میکنه. در ادامه ی دهقانان نزد ارباب میان و میگن ما نمیدونیم این تلخه ها از کجا آمده. اما اگه میخوای اونها را از ریشه در بیاریم کشاورز میگه نه این کارو نکنید چون نمیتونید فرق بین گندم و تلخه رو تشخیص بدید بذارید هر دو رشد کنن تا وقت خرمن برسه در وقت خرمن گندم ها از تلخه ها جدا خواهد شد و وقتی عیسی این مثل رو تفسیر میکنه شما فرق بین این مثل و مثل برزگر رو درک میکنید در این مثل بعضرها کلام خدا نیستند. در این مثل بعضرها فرزندان پادشاهی هستند و تلخه ها فرزندان شیطان منظورم تمام این مثل اینه که دو نوع از مردم در خاک این جهان کاشته شدهاند پسران خدا و پسران شیطان شما نمیتونید فرق بین اینها رو تشخیص بدید چون ظاهرشون شبیه به هم هست این مثل مهمه چون به مشکل فیلسوفها و الهیدانان در طی قرنها اشاره میکنه شریر از کجا میاد تلخه ها از کجا میاد آیا شما بذر خوب نکاشتید پس این تلخه ها از کجا آمد در این مثل عیسی به ما میگه جوابش اینه وقتی دهقانان در خواب بودن دشمن این کار کرده شریر به عنوان دشمن خدا توصیف شده کتاب مقدس این دشمن رو شیطان معرفی میکنه در این مثل قفلت انسان به چشم میخوره وقتی که مردم در خواب بودن قفلت کردند ادمونت بارک در سال 1700 گفته تنها کاری که شریر برای غلبه بر مردان خوب نیاز داره اینه که مردان خوب کاری نکنه. در این مثل ما سوالی قدیمی رو میشنویم. اینها از کجا اومدن؟ بعد در جواب میشنویم وقتی همه در خواب بودند دشمن این کارو کرده. کاربرد شخصی و عملی این مثل چیه؟ این مثل به ما میگه ما میتونیم توقع داشته باشیم در کلیسا گندم و در کنار هم رشد کنند. این به ما میگه ما نمیتونیم تفاوت اونها رو تشخیص بدیم وقتی ایسا موعظه سر رو به پایان برد او به شاگردان دروغین و حقیقی اشاره کرد و افراد بسیار و اندک به کسانی که حرف می‌زنند و کسانی که عمل می‌کنند عیسی وقتی اون سه مثل را از انواع مردمان برای ما ذکر کرد داشت کلیسا رو توصیف می‌کرد ما باید توقع داشته باشیم این افراد رو در برخی از کلیساها ببینیم سال‌ها شبان کلیسا بودند منو قانع کرده که ما در عمل چنین افرادی رو در کلیساهامون داریم به عنوان یه شبان شما نمیتونید تشخیص بدید چه کسی صادق است و چه کسی نیست من معتقدم که بصیرترین شبان ها هم نمیتونند این فرق رو تشخیص بدن چه کسی میتونه بدونه و چرا باید کسی توقع داشته باشه بدونه در این مثل تعلیم اینه بذارید هر دو رشد کنند سعی نکنید تلخ‌ها رو بکنید عیسی گفته روزی من اینها رو جدا خواهم کرد به جین کردن مزرعه تمثیلی برای داوری هست. دروکنندگان فرشتگان هستند. جدا کردن تلخه ها از گندم و در آتش انداختن اونها توسط فرشتگان به ما تصویری از روز داوری رو میده. چیز دلگرن ای که در این مثل هست اینه. اونجا که میبینیم به گندم اهمیت داده شده، داوری و مداخله الهی تلخه ها رو از کلیسا و از بدن مسیح پاک میکنه. آیا شما به تاریخ خوشبین هستید؟ اگر ببینید که انسان مرتبا اشتباهاتش رو تکرار میکنه، میفهمید که او از تاریخ چیزی یاد نگرفته. بزرگترین مشکلی که امروزه با اون مواجه هستیم این هست که تنها مبنایی که برای خوشبینی دارید مداخله الهی هست. وقتی مرد یا زنی الکلی هست، نباید منتظر بشید تا اونها به زلت بیفتند و بعد کمکی رو که نیاز دارند به اونها بکنید. شما مداخله بکنید. به اونها پیشنهادی بکنید که نتونن رد کنند. و اونها برخورد کنید و اونها رو به چالش وادارید تا درمان بشن اونها نیاز به مداخله دارن چون خودشون رو از بین میبرن خب این روشیه که خدا با این دنیا برخورد میکنه این دنیا در حال نابودی هست مگر اینکه خدا مداخله بکنه مگر اینکه دخالت الهی در میون باشه وگرنه دنیا روز به روز بدتر و بدتر و بدتر خواهد شد هیچ امیدی نیست جز مداخله الهی اما در مسئله گندم و تلخه خدا میگه بذارید هر دو با هم رشد کنند روزی من اونها رو از هم جدا خواهم کرد شما نمیتونید کاری در این مورد بکنید پسران شیطان دوش به دوش پسران خدا وجود دارند بیشتر مواقع حتی نمیتونید فرقشون رو تشخیص بدید اما خدا میدونه با مداخله الهی خدا این چیزها رو قضاوت خواهد کرد و تاریخ رو به پایان خواهد برد مسئله گندم و تلخه مسئله چالش برانگیز هست. مس چالش برانگیز دیگری در متا ده وجود دارند در جلسه آینده با هم دیگر به این مسئ ها در باب مسئ های متا نگاه خواهیم کرد دوستان عزیز از خودتون به پرسیدا یا من گندم هستم یا تلخه آیا وانمود می کنم مسیحی هستم؟ اما هرگز تصمیم نگرفتم پیرو واقعی عیسی مسیح باشم؟ امروز مطمئن بشید امروز خودتون را آزمایش کنید عزیزان سوال اصلی اینه؟ آیا شما گندم هستید یا کرکاس چون برای هیچ کدوم از ما تضمینی برای فردا نیست دوست عزیز باغچه قلب شما چطوره آیا عیسی مفهومی براتون داره و بعد آیا عیسی همه چیز شما هست چون تا زمانی که عیسی مسیح همه چیز شما نشه در واقع عیسی مسیح براتون مفهومی نداره دلتون رو مثل راه سخت نکنید که کلام خدا در اون جوانه نزنه و حالا که کلام خدا رو شنیدین تعهد کنید که به اون عمل کنید تا کلام خدا براتون مثل بزری که در زمین سنگلاخ افتاد نباشه دعای ما اینه که مشکلات و های دنیا زندگی روحانی شما رو تحت تأثیر قرار نده دعا میکنیم که بزر کلام خدا در زندگیتون ریشه بزنه و سی شست و صد برابر سمر بیاره امیدواریم خداوند به محصول شما برکت بده و شما را برای جلال خودش مسمر ثمر بسازه